داریوش خاجنوری برخلاف بسیاری از هنرمندان که برای حفظ علاقه با آثارشان نباید به کنسرتشان رفت، بهترین کارهایش را روی صحنه اجرا کرده است. او و برادرش محمد علی در هشت سال دولت محمد خاتمی بیش از نود کنسرت برگزار کردند. کنسرت هایی که هر کدامشان را داریوش در رویای کودکیش تصور کرده. دونه گیتار بودم یادمه که با دوستم که یه دوست خیلی خوبی داشتم که الان آلمانه پزشکی خیلی موفق نم شده این موقعی گفتم می‌خوای چی کاره بشی گفتم من می‌خوام کنسرت بزنم بزرگترین کنسرت های این که تو من میذارم. هزاران نفر میان کنسرت منو ببینم گفتم تو می‌خوای چی کاره بشی گفتم می‌خوام جراح بشم بعد حالا جالب بود که گفت درش عجیبه که من پزشک شدم ولی فکر نمی‌کردم دیشبم می‌گفتم این داره چرت و پرت میگه مثلا وقتی موسیقی وجود نداره چجوری می‌خواد کنسرت بزنه ایمان داشتم که این اتفاق می‌بوده دبیرستان سال اول نظری چند بار از مدرسه بیرونم می‌کردم از سر کلاس معلم‌ها و من نمی‌دونستم دلیش فقط اینکه چون بیرونم می‌کردم خودم بود که برم بیرون بازیگوش بودم یه دوستی داشتم حسین باستانی که دوست خیلی شاگرد اول مدرسه‌مون بود و درسش خیلی خوب بود و بعضی‌ها که منو دید توی بیرون که روزنامه نگاه شده بود و با هم از گذشته گفتیم ما دوست قدیمی بودیم با هم گاردیم اینو گفتش که من داریوش هیچ میدونی از مدرسه میخواستم بیرونت کنن گفتن که این گیتار میزنه گفتن ناخون داره ناخوناش بلنده ما نذاشتیم که تو رو بیرون می‌کنن این می دونستی. گفتم نه ماجرای تا مرز اخراج رفتن داریوش خاجنوری نوری آن هم در سال اول دبیلستان خاطر است که حسین باستانی هم از آن به تلخی یاد می کند شب قبلش موشک باران شده بود یعنی چند جار رو تو تهران زده بودن صبح بالاخره اعصاب همه خورد بود اومده بودن سر کلاس صحبت این مطرح شد که پناهگاه به اندازه کافی نیست و ناگهان داریوش از تی کلاس گفتش که چطور وقتی زندان میخوام بسازن سری تمامش میکنن ولی پناهگاه رو این همه از جنگ میگذره هنوز به اندازه کافی نساختن خب خیلی حرف تندی بود اون وقت اصلا قرار نبود که راحت از این رو بشه سر کلاس ست. و خب این به گوش به هر حال بعضی از مسئولین رسید حالا من اسم همه افرادی که در این قضیه درگیر بودن تو ذهنم اصلا نمیخوام تکرار بکنم بیان بکنم تا پای اخراج این رفتن و اون وقت اون کسی که حالا به دنبال اخراج داروش خاجی نوری بود یک حرفی زد که نشون میداد اینا رو فعالیت های هنری داریوش خاجی نوری هم حساسن گفت فقط به خاطر یه جمله سر کلاس نیست این مزغونم میزنه که خب ما میدونستیم که داریوش گیتار الکتریکی کار میکنه سبک موسیقی راک کار میکنه و خب ظاهرا اونها هم به گوششون رسیده بود که او یک همشین فعالیتوی داره به هر حال با میانجیگری که صورت گرفت و کمک معصری که یکی از معاونین دبیرستان که آدم بسیار شریفی بود انجام داد داروش خاج نوری اخراج نشد ولی این خاطره مشخص که به خاطر گیتار زدنش و به خاطر حالا اون حرفی که زده بود تا دم اخراج از دبیرستان رفت کاملا توی ذهن من باقی میده یباش شباش دوره آقای خاتمی وزرات ارشاد آقای خاتمی بود که من تو فرهنگ سرها شروع کردم کنسرت بودشتم فرهنگ سر شبر، فرهنگ سر بهمن سال ۷۲، ۷۲۳ بود که شروع کردم کنسرت دادن با محمد علی اونجا گروه رو تشکیل دادیم و شروع کردم کنسرت دادن دوباره یعنی تحتیل شد با رفتن آقای خاتمی و تا سال 76 من پشت در سالونا موندم اما همچنا تمرین می همش می رفتم این سال رو اجاره می و شروع میکردم با گروه هم داغ تمرین کردم بدونی که امیدوار باشم که اصلا کی قرار ده سال بی سالیهیه بزنم کنسرت ما کارمون رو میکردم. انقدر ارششاد میرفتم می که اولین کنسرت دوباره مجددی که در باز شد و باز من گذاشتم با معدلی آقای ماجرانی بود و دیگه درو کردم یعنی انقدر که چند سالی تونسته بودم کنسرت بوددم و همش تو این سالال میرفتم تمرین میکردم بدون که آیندهش رو بدونم بنابراین چون گروه هم آماده بود ما هر عفته کنسرت داشتیم همیشه من توب سونام یه سعد و باد نیاوران میگذشتی که کنسرط هشتاد سه گذاشته بودم 84 کاخی نیاوران گذاشتیم میخواستیم سعد و بادم بذاریم یه باره گفت آقا نمیشه گفتیم چرا گفتم که تعطیل شده کنسرت فیلن اصلا برگزار میگه نمیشه هندو چیزی که به من عنوان کردن این بود که جمعیت زیادی میاد تو کنسرت تو نمیتونیم برای جوز بدیم. آقای روحانی من کنسرت گذاشتم و بعد از هشت سال وقتی که ایجاب شدود کنسرت خیلی خوبی هم برگزار کردیم تا اینکه که فکر کردم که دیگه کافی من که مندازه کافی خب کنسرت گذاشته بودم انگیزه دیگه نداشتم از اینکه که باباچه به من میدادن چمدانای قبلی با چند تا از های دیگه هم صحبت کردم یادم مثلا آقای نبی میگفتش که از وقتی که اومده لس آنجلس سال‌ها مجبور شده کار ساختمانی بکنه برای اینکه نمیتونسته اونجوری که دلش می‌خواد کار موسیقی بکنه شما سه چهار ماه بیشتر نایمدین ولی آیا همچین چیزی رو هم تو ذهنتون دارین یا نه فقط دارید فکر می‌کنید که کنسرت‌های بزرگتر ببینین نوع کارمون جوریه که مخ... هدفمون اینی گلمون اینه که موسیقیمون در واگه موسیقی اینترنشناله و میتونه مخاطبای زیادی تو دنیا داشته باشه. به‌زودی هم اینو خواهید دید که شکی نیست در استعداد که شکی نیست مونتاژ شرایط اقتصادی و آره شرایط زندگی. من نه. من, من که میتونم در واقع فکر میکنم که میتونم حالا به‌زودی خواهید دید که نوع کاری که ارائه خواهیم داد اینجوری که مخاطب اوم خارجی هم داره حالا میگیم خارجی ما خودمون خارجی هستیم ما ام خارجی میگام داخلی در ما خارجی هستیم نوع مخاطبمون جوری که فکر میکنم با صحبتایی هم که کردیم به یه جایی رسیدیم البته به زودی یه بزرگی توی آم می ولی اگر نشود چی نشود نداره ببینیم هرگز چیزی به اسم نشود من منم ا باشه ما اصل الان 1900 چی میگم 1396 هستیم 2017. ما مثلا سال 2020 یا مثلا یا نه نه نه میخوام بگم که فکر که اون موقع چیکار برام سال 1400 شمسی یا مثلا میلادی رو ما اون. خیلی زودتا از من یعنی فکر میکنم اما خب برلگ اونجا اون زمان ما موسیقیمونه در روی با یک بند تشکیل شده از موسیقیدان های بزرگ نوازندی خوبه امریکایی بینو مللی امریکایی نم بینو مللی همراه با نوازنده های دیگه ایرانی که استفاده خواهیم کرد کنسیت بزرگی نداره امریکا سراسر سر دنیا بود. سوال بیشتر 2 تا 4 ماهه ام آقا چه این مثلا توی چمدونم خیلی سختی که بدونم الان چیزی که میخوام ببرم چیه اما تو همین سه چهار 4 ماهه بهترین چیزی که دیدم بود که این همه اقوام مختلف از ملیت‌های مختلف مذهب‌های مختلف دیدای مختلف کنار هم دارن به راحتی زندگی میکنن این حسن همجواریشون که در واقع در کنار هم اینقدر راحتن بهترین چیز Thank you.